گرامیان درود بر شما فایل آبایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخ رو با هم آغاز می صفحه 76. عنوان آشناپنداری آشناپنداری یا دیجاوو چنین است که شخص پس از دیدن سحنهی گمان می کند قبلن آن را دیده مثلا به جایی می رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می آید یا کاری را در جایی انجام می دهد و نایهان حس می کند قبلا همان کار را در همانجا انجام داده است در حالی که می چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصا به عنوان شاهدی و راستی تناسخ برداشت می شود و موجب می گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می کنند تخمین های مختلف نشان می دهند. بین 60 تا 80 درصد افراد حتی حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایعتر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان نمی‌یابد تحقیق در مورد آن دشوار است وقوع تجربه آشناپنداری بلا فاصله قبل از آغاز تشنج در سرع لب گیجگاهی شایع است در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف دو داروی آمانتادین و فنیلپروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است، یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می دهد. به این ترتیب که اگر بخشهایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخشهایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند، دچار اختلال عمل کرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه ای پیش درک کرده را به عنوان خاطری از گذشته دور تفسیر می کند. یعنی شخص به درستی می داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده. اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه ای پیش بوده. ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان خواب و رویا امروز برخلاف گذشته‌های نه چندان دور مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سرزدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته ها و شنیده های خود در خواب باور پیدا می کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مزامین آن رویاها اتخاذ می نماین. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می دهد. و این از آنجا ناشی می شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می کنند در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموع سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای سیصد و شست نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند طبعا کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود نشان میدادند که آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند دیویس نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند این نشان میداد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارد. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند میگفتند که خواب نمی بینند بلکه خواب می شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لبهای فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلا خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط تصویر تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تایید کرد در زمان خواب دیدن مراکزی از مغز مثل انسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان میدهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی غم خجالت و ترس را کاملا تجربه می میکنیم در زمان خواب دیدن کانونهایی چون پاریتال کورتکس posterior کورتکس و دورس و dorsolateral پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان میدهد چرا برخلاف بیداری که تخیلات تخیلاتمان را از موضوعی که نمیخواهیم به موضوعی که میخواهیم هدایت کنیم در خواب اختیاری بر چیستی رویه هایی که به سراغمان میآیند نداریم دورس و لترال پریفرانتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است استدلال های خند آوری از ما سر می زنند. همچنین در هنگام رویا دیدن فعالیت قشر حرکتی مغز کم می شود. که این موجب می گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود معمولا این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه ای نسبت میدادند و مثلا میگفتند بختک رویشان افتاده شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مزامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود عنوان موجزات یک پدیده خارق‌العاده را می توان با نظریه های مختلفی توصیح داد. می توان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد یا آن را شوعبده و تردستی دانست. می توان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله موجزه که به میان می آید، ما چندان در تلقبی ما از آن پدیده العاده که می بینیم و یا می تأثیر ندارد. بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریههای بالا سوق دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود کمترین توجهی را در یک مسیحی بر برنمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می کند درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین در افراد به اوست که می تواند تأثیر شناختی بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعا معجزه ای اتفاق افتاده است بیمارانی نزد معجزگران دعانویسان و مدعیان شفا دهندگی می روند. و یا از قضا و نوشیدنی به مانده از افراد مقدس میخورند یا به زیارت قبوری مقدس میروند تا شفا یابند و در مواردی واقعا شفا میابند و یا بهبود نسبی به دست میابرند. و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود میابرد نسبت به اینکه واقعاً واقعا دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است آنها نمی احساس بهبود را منکر شوند چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرتهای ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات میتواند در نتیجه گیری نهایی موثر باشد اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه عنوان اثر دارونما این بخش را با شرح دو داستان واقعی شروع میکنم داستان اول مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه میکند به نظر میرسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می خواهد که این دو متاسین تذریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می کند و به او اطمینان می دهد. ظرف یکی دو دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می گیرد و از پزشک تشکر بسیار می کند. پزشک به اتاقش می رود تا برای بیمار نسخه بنویسند. او متوجه می شود که روی میزش جعبه ظاهرا خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می اندازد. اما متوجه می شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می کند و می بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است. و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول این دومتاسین را تهیه کند در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود داستان دوم مرد 26 ساله ای به کمک همسایش به اورژانس بیمارستان مراجعه می کند و می گوید که نه کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد دافتلب نیز آزمایش می شوند. به این ترتیب که به بعضی از دافتلبان داروی باقعی و به بعضی نیز دارو داده می شود. دارو نما بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید سه گروه تحت بررسی قرار میگیرند. گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت میکنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکردهاند بهبود دهد بلکه باید وضعیت و علایم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعا تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند بیماران نمیدانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارو نما دریافت کرده است به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف گردد. به چنین مطالعاتی دو سوکور می‌گویند چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی دانند چه کسی دارو و چه کسی دارو نما گرفته است؟ اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش دو ماه از افسردگی رنج می برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی زده افسردگی جدیدی را می بیند. و تصمیم به مشارکت در آزمایش می گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می کند. اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می شود و از همسایهاش می او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش، به 80 بر روی 40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی 80 است دو لیتر سرم نمکی به او تزریق شد فشار خونش بالاتر رفت اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آن چه خورده بوده دارونما یا بهتر از بگوییم ماده ای بیخاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی در آمد. هرو بیارتسون و گوچه دو محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند. و در این متاانالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلا دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجهگیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل یک سوم اثر یک داروی ضد درد غیر استرویدی مثل این دو بوده است. همچنین در سال 2001، آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند، در دو گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد آن هم به شکلی نمایان تزریق میشد و به آنها گوشزد گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم، داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می شد و آنها متوجه نمی شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق میکردند بعد از تذریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان میدانستند دارونما تزریق میکنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت. و عمل از کسانی که همان دارونما را نیز تذریق نکرده بودند، بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناغلهای شیمی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند در ایجاد آثار تسکینی دارونماها ها تأثیر دارند. به عنوان مثال، وقتی به جای مورفین دارونما تذریق می شود، همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار میگذارد اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می‌شود دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد نالوکسان دارویی است که گیرنده های آندورفین را در سلولهای عصبی مصدود می کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می‌گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می‌افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی‌گردد. مکانیسمهای دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتا عمل جراحی نیز میتواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل زایعه پیدا شده و اصلاح شده باشد به هر حال اینکه افراد بعد از دعا زیارت خوردن یک ماده جادویی بیخاصیت، آب دعا انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی میکنند میتواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسط قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد. و لذا بهبود بیماری نمیتواند. یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان یادآوری معجزه گاهی افرادی را میبینیم که یک پدیده خارق العاده و معجز آسارا که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف میکنند یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌ای را از گذشته در حافظه داشته باشیم منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌های خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم طبعاً چنین خاطراتی میتواند برای کسی که آن را به یاد میآورد، یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیح منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده های معجزگونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمی توانیم این گونه پدیده ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت امدی قدرت های ماورایی بگذاریم اما می خواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از ذابیع دیگر بررسی کنم. از ذاویه قابل اعتماد بودن حافظه مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد، تی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرد. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور اینکه چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعا در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این امه اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطری از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند، درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان چهار داستان طرح کردند. سه داستان واقعیت داشت اما چهارمی محتوی مطالبی باور کردنی لیکا جعلی بود داستان چهارم مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا میکرد و تحویل پدر و مادرشان میداد در مصاحبهای که با داوطلبان انجام شد این چهار داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستان ها را به یاد می آورند یا نه. حداقل یک چهارم آنها گفتند یادشان می آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند. حالا که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می آوردند. اما هفته بعد که مراجعه می کردند، چیزهای خیلی بیشتری یادشان می آمد. مثلا درباره خانم موسنی که آنها را نجات داده بود حرف می زدند و اضافه می که آن خانم موسن کلاه عجیب و مسخرهی روی سرش بود یا من آن روز اسبابازی دلخواهم را با خود داشتم یا مادرم خیلی عصبانی شده بود لافتوس متوجه شد نه تنها می شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برکم میدهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنیتر کردن بافت ماجرا میپردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می توان با پرسیدن سؤالهای خاص تغییراتی در پاسخهای افراد ایجاد کرد او از داوطلبان که صحنه برخورد دو اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می پرسید ماشین هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می کردند یا می پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق میافتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس ها به از دست دادن خاطرات می شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس ها مولکول های بلندی است که از سلول های هر طرف سیناپس خارج می شود. این مولکول های ای بلند که به آنها مولکول های چسب سلولهای عصبی یا NCAM یا نورال سل Adhesion Molecule میگویند یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم میچسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود میشوند احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می دوچار لقزندگی می شوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت میگیرد و سیناپس دوباره توان رشد کردند و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندیهای جدید را می آبد آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددن خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و تایکربندی سیناپسی جدید تحکیم می گردد در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخانی شود و دوباره به جایش باز کردد بلکه هر بار که فراخانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود یادهای ما با هر بار یاداوری نوزایی می شوند هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آین. و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپسا رخ می در معرض تغییر و دگرگونی نیز میباشند اینکه در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت میگیرد مزیتی برای مغز ماست و باعث می شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات زبت شده در خافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالا همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکابی به کار می‌آید. به این صورت که روانکاب تلاش می کند تا سوجهش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد او ممکن است نهایتا موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهندهی آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند، بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایه حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم می شد. و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت اما امروزه مرور عکس ها و فیلم ها و نوشته ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می کند ضمن اینکه در همان عکس ها و فیلم ها هم که توسط دوربین های بیشمار ثبت و ضبط می شوند اثری از پدیدهی خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی شود ولی به هر حال همواره ممکن است اقراقهایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت میگیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اقراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد گرامیان همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم تا درودی دیگر بدرود